بسم الله الرحمن الرحیم بی اندازه مهربان نهایت بارش نون قسم قلم و با آنچه می نویسن تو به فضل پروردگار خود دیوانه نیستی و بگمان برای تو پاداش است و حقا که تو بر مرتبه بزرگ اخلاق قرار داری. پس به زودی خواهی دید و خواهندی که به کدام شما دیوانگی عارض شده است بیگمان پروردگار تو به این داناتر است که چی کسی از راه او گمراه شده و او به حال رحیابها نیز داناتر است پس تکذیب کنندگان را اطاعت مکن آنهایی را که دوست دارند اگر نرمش کنی تا ایشان نیز نرمش کنند و اطاعت مکن از هر بسیار قسم خوری زلیلی بسیار عیب جوی، سخنچین، بسیار منکننده خیر متجاویز گناهکاری، زشت خوی جفاکاری و بعد از همه اینها حرامزاده ارا که چون از دارایی و فرزندانی برخوردار است وقتی که آیات ما بر او خوانده شود میگوید اینها افسانههای های پیشنیان است بزودی بر بینی او داغ می نهیم ما ایشان را آزمودیم طوری که صاحبان باغستان را آزموده بودیم چون سوگند خوردند که میواهای آن باغ را صبحگاهان می و استثناء نکردند. یعنی انشاء الله نگفتند پس شبانگاه که ایشان در خواب بودند از جانب پروردگارت آفتی بر آن باغ نازل گردید پس به مانند زمین سیاهی درآمد که گویی در آن هیچ کس نبود صبحگاهان یک دیگر را صدا زدند که وقت به سوی کشتدار خود بروید اگر می و چین هستید پس به راه افتادند در حالی که باید دیگر آهسته سخن میگفتند که متوجه باشید که امروز هیچ مسکینی با شما داخل باغ نشود بامدادان با عزم قوی مبنی بر جلوگیری از ورود مستمندان به چیدنی میورفتن میپنداشتن که بر این کار توانی دارند ولی چون باغ را به با آن حال دیدند گفتند: بیگمان باغ را گم کرده ایم بلکه ما از این نعمت محروم شده هستیم بهترین شخصیتشان گفت آیا با شما نگفتم که ای کاش خدا را با پاکی یاد کنید یعنی بگویید؟ اگر خدا بخواهد چنین و چنان میکنیم گفتند پاک از پروردگار ما واقعا ما ستمگار بودیم سپس بعضیشان روی و بعضی دیگر کردند یک دیگر را ملامت قرار دادند و گفتند ای وای بر ما یقینا سلکش بودیم، شاید پروردگار ما بیتر از آن باغ را به جای آن به ما بدهد بیگمان ما به سوی پروردگار خود رو آورندهیم چنین است عذاب دنیا اما عذاب آخرت بزرگتر است اگر می دانستند بگمان برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان به سرشار از نعمت است. پس آیا مؤمنان را مساوی با گناهکاران قرار دهیم؟ شما را چی شده؟ چی گناه داوری میکنید؟ آیا برای شما کتابی است که از آن میاموزید؟ که در آن آمده باشد آنچه را شما پسند می کنید از آن شماست یا از ما تعهدات مندی تا روز قیامت دارید بر اینکه که هرچی بخواهید از آن شما باشد از ایشان بپرس کدام یکیشان بر این امر زامن است یا ایشان با خدا شریکانی دارند پس شریکان خود را بیاورند اگر راست می گویند؟ روزی که پاچه از ساق برزده می شود و به سجده فرا خوانده می شوند ولی توانایی آن را ندارند در حالی که چشمانشان از فرق شرمندگی پایان افتاده و ایشان را خواری فرا گرفته است واقعا پیش از این به سجده فرا خوانده می در هنگامی که سالم بودند یعنی توان عبادت را داشتند با آن هم از سجده به پروردگار خیش خودداری می کردند پس مرا بگذار و کسانی را که این حکم خدا را تکذیب می کنند تا ایشان را به سزایشان برسانند ایشان را از راهی که نمیدانند دانند درجه و درجه به سوی عذاب خواهیم کشاند و به ایشان محلت خواهم داد واقعا تدبیر من محکم است یا از ایشان مزدی می خواهی که از این تاوان سنگین بار می شوند یا اسرار غیب نزد ایشان است که آن را می نویسند؟ پس منتظر حکم پروردگار خود باش و مانند صاحب ماهی یعنی یونس ما باش آنگاه که دعا کرد و او بسیار دلتنگ بود اگر نعمت پروردگارش به سر وقتش نمی رسید با بیابان افقنده می شد در حالی که او نیکوهی دمی بود ولی پروردگارش او را برگزید و او را از صالحان گردانید واقعا نزدیک بود که کافران تو را با چشمهای خود آسیب درسانند چون قرآن را شنیدند که تو میخاندی و گفتند او واقعا دیوانه است در حالی که نیست آن مگر پندی برای همه جهانیان